السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاصی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین السلام عليك ایوه النبی و رحمت الله و برکت السلام على الائمت الهادين المهديين السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الهجث بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الهجث بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هاده سعاء و في كل ساعة والي و حافظ و غايد و ناصر و دليل و عينا حتى تسكنه ارض توعا و تمتعه فيها تبيل. اللهم اجل واليك الفرج وجعلنا من انصاره و امن اعوذ بالله من الشیطان الرجيم و اذا سعلك عبادی انی فاني غريب غریبون اجیب و دعوت ادداع ازادعان فل یستجیب و لی ولی امنو بی لعلهم يرشدون آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره که سه چهار جلسه هست فعلا در خصوص این آیه که قسمت عمده و جان مطلب در باره دعا و عرض ادب به پیشگاه حضرت حق به صورت سؤال بندگی است این مطالب تا به دینجامت مطرح شد که یک از مسلمات است در آیات و روایات که یکی از ویژگیهای ارزنده مؤمنین دعا کردن است فعلا به این سوال من نپرداختم که اگر خدا عالم السر و, و خفیات است همه امور را میداند از یک طرف حرم او بینهایت است از سوی دیگر پس چرا ما را وادار کرده که دعا کنیم سوال کنیم و درخواست کنیم مگر خود خداوند نفرموده است و اولیای دین به ما یاد نداده که از نشانی های کرم کریم و از بزرگواری های یک بزرگوار این است قبل از اونی که محتاج درخواست کند به او جواب بدهد حتی نگذارند آنها سوال کنند درخواست کنند عرض شرم سوال و درخواست بر چهره آنها بنشیند تا حدی که در روایات ما آمده است شخصی به امام حسین علیه السلام وارد شد به حضرت عرض کرد مشکل و گرفتاری دارم حضرت فوری از اون جنبر خواستند به اندرون رفتن مبلغی بیش از اون مقداری که او درخواست کرده بود از یک دریچهای به بیرون آوردند در سایه رو و فرمودند بگیر و برو اون طرف گرفت حضرت در اون اندرون موندند وقتی این شخص رفت حضرتش باوردن بیرون یکی از یاران خاص حضرت سوال کرد ابن رسول الله راز این گونه عمل کردن چه بود حضرت فرمودند ندیدید چقدر آبرومند بود و خجالت میکشید؟ من نخواستم بیش از شرمنده شود خواستم چشمش به چشم من کمتر بیفتد و بیش از اون مقداری هم که میخواست به او دادم تا سری از این مکان برود در جمع خجالت نکشم خب اگر این یک صفت ارزنده است و به ما هم دستور دادهاند سعی کنید نیاز نیازمندان را شناسایی کنید حتی قبل از که آنها به زبان بیاورند شما جواب گو باشید پس چرا خداوند انقدر مصر است دعا کنید بگید درخواست کنید حتی حدیث داریم از معصوم که خداوند بنده ای را که دوست دارد دعایش را زود اجابت نمی کند تا بیشتر درخواست کند چرا حالا من حدیث رو اجازه بدید اینن از متن بخوانم که بیان معصومه و برخی که در این وادی اتفاقا وارد شدن و یک کارهایی هم در این زمینه انجام دادند از باب نمونه ارز کنم اونها هم حتی به شعرم آوردن این مطالب رو و اعتراف کردند اگر این گونه نظام الهی که پروردگار عالم میفرماید حتی من اجابت رو تأخیر میندازم. تا اینکه شما بیشتر درخواست کنید و دعا کنید با اونکه لازمه بزرگی یک بزرگ و یک کریم ظاهر این است که حتی قبل از درخواست به او جواب بدن این چیه. از طرف دیگر مگر ما نداریم حتی در عدیه که یکی از ویژگی های پروردگار که در دعاها می اینه یا من ابتدعه به نعم قبل اشتهغاغه ها ای کسی که آغاز به نعمت دادن میکنی، ابتدای به نعمت میکنی، کنی انایت می قبل استحقاقها قبل از اینکه اصلا استحقاقی ما داشته باشیم قبل از استحقاق ابتدای به نعم دارد بعد ما را وادار کرده مصر باشیم درخواست کنیم دعا کنیم و بخواهیم چرا؟ در اصول کافی جلد دوم صفحه 488 بابی هست باب به تاخیر افتادن اجابت دعا حالا البته در این مقوله من انشالله ادامه بحث رو حالا پی میگیریم بیاری خدا وارد این بحث میشم گاهی دعا به صلاح ما نیست اجابت نمیشه گاهی دعا شرایط دعا را ندارد به اجابت نمیرسد گاهی دعا زای کردن حق دیگران خدا به اجابت نمی رسانه. گاهی دعا با لغمه حرام و اذیت کردن دیگران و زای نمودن حقوق دیگران است که تا اونها انجام نشه دعا به اجابت نمی و قصه یه نمونش رو نظر من میخوام عرض کنم فکر نکنید من الان از این باب این روایت رو می که امام علیه السلام فرمودن خداوند دعای برخی را به اجابت نمیرساند چون دوست دارد اونها بیشتر دعا کنند این یک قسمشه حالا در اون بخشی که چرا دعای برخی به اجابت نمی رسد اونجا اقسام دیگر رو هم بیاری خدا بحث خواهیم کرد الله. اما اون یکی که فعلا مورد نظر ماست حدیث هد... شماره نه از این باب سطحه چار ابو عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام فرمودند ان المؤمن لا الله عز وجل فی حاجته ان المؤمن مؤمنی که خدا را میخواند دعا می کند در مورد حاجتش از خدا درخواست میکند سیقول الله عز وجل خدا میفرماید و دستور میدهد آخرو اجابته او شوگان علاو صوتی و دعاه تأخیر بندازید اجابتش رو. یعنی خدا به ملائک معموف، خدا به کارگذاران عالم حسی، خدا به معمورین عالم وجود فرمان میدهد، امام صادق میفرمایند آخرو اجابته او تأخیر بندازید اجابتش رو دیر بنده نذارید به این زودین دا به اجابت برسه شوقن الى صوتهی و دعاه چون خدا اشتیاق حالا این اشتیاق خدا اینا معمی داره یه مقدارش امشب شاید با چهار آیه قرآن بخوام اشاره کنم خدا شوق داره که صوت ای بنده رو بشنوه ندای این بنده بلند باشه یعنی اینجوری با خدا راز و نیاز کنه درد دل کنه از ندا برسه به دعا از دعا برسه به مناجات فرقش چیه؟ اینشالله میخوایم این شب بحث کنم ندا است که فریاد بلنده که دو معنی داره یک فرد خدا را دور میبیند فریاد میزند دو ممکن اصلا تو این انگیزه نباشه تو الان بنده ببینید اگر بخوام آقا رو صدا کنم به اندازه این فاصله صدا میزنم اگر کتی رو بخوام توی آشپاسخونه حسینیه صدا کنم به اختضای فاصله ای که توی آشپزخونه قائل هم صدا میزنم ندا مال جاییش که این مقداری دور یا یه ندا هم معمولا در این منادا که فاصله داره به کار میره لذا گاهی در معرفت یا شناخت خدا را دور می‌بیند با یا رب یا الله یا به این معنی گاهی نه مثل هر افتاده که الان اوج نیازش توی جدول خیابون افتاده دو قدمیش یکی داره رد میشه از بس نیاز داره و دردمنده فریاد میزنه گاهی اینگونه با خدا حرف میزنه این میشه ندا از ندا این به دعا اونجایی که خودشو نزدیک میبینه فاصله حسن نمیکنه. خدا رو از همه نزدیکتر میبینه حتی ممکنه به زبان نیاورد ولی همچنان که خیره شده به یه گوشه و عشق از چشماش داره میریزه با زبان دل داره با خدا حرف میزنه این میتونه دعا باشه کما اینکه دعایی با لفظم میتونه باشه اما مناجات و نجوا در گوشی رو میگن لذا مناجات شبانه میگن میگن حتی شما اگر توی اتاقی که دو نفر خوابیده است پاشدی در قنوط نماز شب یا در بین رکعات نماز شب میخوای با خدا درد دل کنی اون گونه آرام باشه که اون خابیده اتا متوجه نشه این نجیبا میشه حالا این یه جنبه ظاهری ملاحظه دیگران و عدم ریا داره یه جنبه دیگهی هم داره که حالا عرض میکنم بگذارید من روایق اول بخونم فیقول الله عز وجل اخر اجابته شوقا الى سوقي ودعاءه فاذا كان يوم قیامه قال الله عز وجل و چون روز قیامت شود خدا می ابدی بنده من دعاوتنی تو اجابت من خوندی دعا کردی من اجابتت رو تاخیر انداختم و ثواب تو رو عقب انداختم و ثوابک کذا و کذا و دعاو تنیفی کذا و کذا و اخرت و اجابت که و ثباب که کذا و کذا این کذا و کذا یعنی قابل این که تو دنیا معلوم بشه چیه نیست فردای قیامت خدا میگه تو دنیا دعا کردی؟ من عقب انداختم حالا ببین چیه پاداشه بگیر کذا و کذا یعنی از بس عظیمه نمیشه در ظرف دنیا بگونجه غاله، این عبد مؤمن امام ببخشید غالی صادق علی امام صادق علیه السلام فرمودند تیتمنن نل مؤمن تمنا میکنه نهو. لم یستجبل له دعوه نفس دنیا مما یرا من حسن ثواب وقتی مؤمن این مرحله رو قیامت میبینه آرزو میکنه ای کاش هیچ یک از گواهاش در دنیا اجابت نمیشد که چنین پاداشی براش باشه خب حالا من بخشم سیدن این نیست حالا باردی مقوله خواهم شد الله ف... اینجا چون اینو گفتم اجازه بدید شعر زیبایی رو مولوی این روایات رو شعر کرده چقدر قشن یه شعری هم از مرحوم ملا رفیعای غزوینی که شاگرد ملا خلیل غزوینی بود از فقها و متکلمین بزرگ سده یازدهم همه هجریت. هم از اون چاپ شده بسیار قوی به نام دیوان واعظ قزوینی که ملا رفیعی قزوینیه او همین رو در یه شعری آورده خیلی زیباست من حالا هر دوتا اول شعرشو بخونم بعد وارد اون بحث بشم پس ملائک با خدا نالند زار کی مجیبه هر دعا ای مستجار بنده مؤمن تذرع می کند ببینید قیده و آورده شما آورده، این که روایت داره این چه مال است که روایت مام بود که مؤمن، بنده معمن تذرع می کند او نمیداند به جز تو مستند تو عطا بیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتری حق بفرماید که نزد از خاری اوست نه از خاری او حق بفرماید که نز خاری اوست این تأخیر این تأخیر یاری اوست ناله مؤمن همی داریم دوست گر تذرع کن گو تذرع کن که این اعزاز اوست حاجت آوردش زی قفلت سوی من خیلی دنیا داره قفلت حالا اینجا اثر دعا که عامل قربه میخوام امشب وارد شم چرا میگه دعا کن؟ اینه دقت کنی دنیا داره غفلت سرگرمی ها و مشغله ها انسانو به خودش مشغول میکنه انسان در گرفتاری ها و ابتلاعاتی که بیشتر به یاد خدا میفته یا همه چیزش رو برا باشه اینالانسانه لیتغا انزعا استردنا یه قایده کلیست ق... خدا بندگانی را که دوست دارد تلنگری میزنه که تو چرا گفت یک عابدی رو بعد از مرگش تو خواب دیدن چه میکنی گفت گرفتار یک حرفم چه حرفی و یه روز بارانی از منزل خارج شدم گفتم عجب باران به موقعی منو دارن معاخضه میکنن تو دیگه چرا کدوم کار خدا بی موقع بود که این بارانش به موقع بود همه چیزش رو حسابه قفلت که میگیم حتی تو این وادی بچه برف خوبی به موقع اومد به کدوم کارش موقع است برفم بیاد به موقع است نیادم به موقع است خشمشم به موقع است رحمتشم به موقع است من غافلم که رو حساب شخصی خودم دارم نگاه میکنم میگم به موقع با لذا اونایی که خدا میخواد گوششونو بگیره تربیت کنه حواست جمع باشه او رو توی ابتلاعاتی میندازه که اون دعا کردن و سوز و گداز زمینه توجه به حضرت حق بشه زمینه توجه به حضرت حق که شد غرب رو بیشتر میکنه حالا آیات مربوطترم هم عرض میکنم خیلی داره این نوع روایات رو به شعر میاره حاجت آوردش زغفلت سوی من آن کشیدش موکشان تا کوی من کاری کردم فکرشونش بیارن در خونه ما کجا داری میری در حالت عادی بعضی چیزات رو به خودش مشهور کرد یه حدیث از امام صادق یه وقت خوندم براتون امام صادق علیه السلام پرمودن. یکی از اسامی حضرت حق آه, آه. یادتونه؟ روایتشم خوندم آه یعنی دل پر درد، دل گدازنده بر مبنای اون درد و سوز و گدازی که دارد آهی که از اعماق جانش میکشد خدا خدا گفتنه خدا میخواد بنده با او باشه یه عده نمیخوان میگه باشه راحتون کردم اول اطماع محجت میکنه راهنمایی میکنه پیغمبر میفرسه امام میفرسه امکانات بهش میده تا حدی که لازمه وقتی نه میگه خیلو خوب راه کنید هر کاری میخوان خودشون برن تو مسیر خودشون ولی اگر نه بنده است که از خدا میخواهد خدا میخواد به او لطف انایتش رو برسونه کاری میکنه که زمینه دعا در او ایجاد بشه زمینه دعا که ایجاد شد کشش رسوی حق درست میشه حاجت آوردش ز قفلت سوی من آن کشیدش موکشان تا کوی من گر برارم حاجتش او وارود زود حالت رو بدم. و خب میره تموم شد گر برارم حاجتش او وارود هم دران بازی چه مستقرد شود گرچه چه نالد به یا مستجار دل شکسته سینه خسته گو بذار خوش همی آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او من خوشم میاد و خدا خدا بگه من خوشم میاد بره خودش یعنی میبینم داره میاد بالا بذار بیاد بالا ای بنده لیاقت داره بیاد بالا حالا که لیاقت داره بیاد بالا من انداختمش تو سودو گداست حالا که انداختم تو سودو گداست میگم بزا با این سودو گداز این رو مولوی میگه با توجه به اون روایات مرحوم ملا رفیع قزوینی شاگرد ملا خلیل قزوینی هم صفیح هم متکلم معروف عصر سده 11 هجری واعظ معروفی هم بوده که می اینجوری که در شرح‌هاش نوشتن مال 300 خورده سال قبل اول سخنور عصر خودش در قزوین بوده و خطه اطاف آدم زنده دلی هم بوده چقدر زیبا این معنا رو میگه تا زنده است دل نیست لذت تذیر دنیا کی میشود نمک سود ماهی ز شور دریا <تصفيق> قوغاس ماهی وقتی زنده است چون زنده است هرچه آب دریام زیاد باشه ماهی دودی که نمیشه غرق نمک که نمیشه ولی ماهی وقتی مرد تو نمکش گذاشتی. میشه ماهی دودی تا زنده است دل نیست لذت پذیر دنیا دل زنده که دنیا اصلا توجه می دانه که مردهش دنیا براش نطرهه کی می شود نمکسود ماهیز شور دریا چون سایه چند افتی در پای قصر و ایوان در دار دست از شهر، بگذار سر به زهرا با سوز و ای این بیت منظورمه با سوز و باشد روشن طریق مقصد آتش بلد نخواهد هرگز به راه بالا چقدر زیباست با سوز عشق باشد روشن طریق مقصد آتش بلد نخواهد هرگز به راه بالا آتش میخواد بالا بره راهنما میخواد اگه آتش شد میره بالا الان یه مشت چوب دقت کنید یه مشت هیزم استعداد آتش و شعلور شدن رو داره ولی آتش نشده هیزم افتادیم پایین بالا نمیره این چوب وقت بالا بره باید هیسی کنش بدید تناب ببندید بکشید بالا جاذبه زمین میکشدش پایین ولی وقتی آتش شد آتش خودش میره بالا انسانی که دل سوزان ندارد انسانی که یک پارچه آتش نشده حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم پخته شدم سوختم سوختم تا عشق را آموختم و چه بهجا گفتن خدایا جان به رسید تا جام وصل تو به لب رسید این سوختنها برای چیه آتش بلد نخواهد هر به راه بالا اگه آتش رو دیگه راهنما نمیخواد بلد نمیخواد کمک نمیخواد خودش میره بالا اگر میخوای بالا بری باید بسوزی دعا مال سوزداراست اخی یه دای تصنعی داریم یه ادای دعا داریم یه دعا داریم میشه استغفار شما دقت کنید واقعا کنار حرم یک امام خدا معرفتش رو بده خدا حال و درکش رو بده تو ایوان امیر المؤمنی خودم تو بیاره بیاره زریه مولاست احلیه اینم ایوان مولاس شما اونجا مخوای حرف بزنیم یه زمانه آدم میخواد بگه خدا تو رو به آوروی این علی منو بیاموز منو قبول کن خب این میبینه که بالاخره تو ایوان استاده دیگه باید یه چیزی بگه خب یه اونجا که نمیشه بگه که خدا گوشکلو چنده خب بالاخره یه اقوارو میزنه اما یه وقت با تمام وجودش احساس میکنه خدا علی من کجام یه دسته که میخوره منم میخوام بیام بالا اونجا از اعماق وجود میگه ای خدا تو رو به جان این علی منم تکونی بده این استغفار یا این حرف زدن این اگه لفظم نباشد همین قدری که از دل بیاد این دعاست اما صد بار این لفظم داد بزنه خدا من رو به علیه خدا خودم می فهمم از در حرم مولا آمدن بیرون همون هم کل اول یا بدتر از اول ای که دعا نیست که دعا اگر شد از سوز حکایت میکنه از ناله حکایت میکنه از عمق جان وابستگی با او پس چرا خدا با ما میگه دعا کنید مگه خدا نمیگه کریم زودتر از کرم بده حالا جواب بدم بیام تو قرآن خدا گفته کریمی قبل از اینکه سوال کنه کرامت اجازه میده بشه بده سؤال از کی؟ انسان از انسان من اون جلسهی که توضیح دادم خاسته بالاتر از پایین تر که امره خواسته مساوی با مساوی که دعا نیست خواسته پایین تر از بالا دعاست انسان ها الان همین فقیر محتاج ضعیف نیازمند به نان شب اومد در خونه شما در زد آقا جان تو رو خدای تی نون شب به من بدی از کجا معلوم از شما بالاتر نباشه هر گوش گمان مدر که است شاید که پلنگ گفته باشه شدو خیلی در پیش از شما بالاتر باشه لذا اونجا مقوله دعای به این معنی نیست اون مقوله یاریجستان جستن ها در کنار همه لذا گفتن سعی کن تا ببین اگر کسی نیازی داره زودتر از این که درخواست کنه بهش بده که اما دعا یعنی پایین از بالا خواستن پایین از بالا خواستن هر پایی که قبلا گفتم پایین رو به بالا متصل کنه مثل سوال علمی چقدر دستور داده شده سوال کنید سوال کنید پرسیدن اید نیست ندانستن بعد حتی امام باغر علیه السلام فرمودن حلاق شدن مردمی که سؤال علمی بین خودشون طرح نمی کنن چرا اونجا انقدر میگه سؤال کنی؟ چون سؤال از کسی میپرسن از اون بیشتر بلده. اونی که در زمینه علمی از شما بیشتر بلده بروه سؤال کن بذار تو رو بکیشونو بالا حالا سؤال از خدا خدای لایتناها به ما لایتناها مطلق کمال کمال مطلق من انسان خدا میگه انسان میخوام بیارم بالا راه بالا اومدن اینه که منو هي برای این تو رو مبتلا میکنم تا بخانی اما اگر دیدم تو ابتلا علیارفانیسی راحت میکنم لذاد این جمله ای که تو عبارات دعاهای ما اومده دقت کنید مرتب معصومین به به یاد دادن یک نگید خدایا هیچگاه ما رو مورد امتحان قرار نده قد غلطه چون سنت خدا اینه که شما رو مورد امتحان قرار بده بگید خدایا ما رو در امتحان قرار بده ولی کمکمون در امتحان نلکسیم نیفتیم خب حالا اجازه بدید من از قرآن چهار مضمون قرب رو از چهار آیه اشاره کنم تقاضا دارم دقت کنید شاید این توجه رو فرموده به من کمک کنید اگر نکرده این توجه رو تا حالا خب هر کدوم چند بار تا حالا ختم قرآن کردید خودتون میدونید ولی ببینید این حرفها چیه تو قرآن یک سوره هود آیه شست و یک تقاضا دارم دقت کنید آیه چی می سوره هود آیه شست و یک خب اولا آیه که مورد بحث ماست چیه؟ فعضا سعالک عبادی امنی فئنی قریب من قریب من نزدیکم این نی قریب این آیه رو داشته باشید. دعا هم گفتیم ب... روایت ایز قبل خوندیم بعد از همه اون حرفا دعا چیست؟ دعا برای قربه و میگه من غریبم من که نزدیکم دعا میکنیم تا نزدیک بشین تحصیل حاصل یا نه حالا این چهار تا آیه رو دقت کنید میخوام بگم سوره حود آیه 61 داستان جناب قوم سمود و پیغمبر این قوم بعد از قوم عاد آیه رو خدا داره میگه بعد میاد راجع قوم سمود که تقیان کردن بیدین بودن خدا رو فراموش کردن و الى سموده اخاهم صالحا غال به سوی قوم سبود برادر اون پیغمبر آمد صالح بود و به آن قوم گفت گال یا قوم بود الله مالکم من الهن غیر او خدا را عبادت کنید خدای دیگری برای شما نیست خوایم شما کم من الارض وسث مرکوم فیها که برای شما زمین رو قرار داد آبادی او امران او آبادی زمین رو برای شما فراهم کرد وسث غفرها شما تو اله استغفار کنید توبه کنید به سوی خدا برگردید این نرب بی غریب مجیب اینجا دقت بفرمایید ان ربی چی میگه ان ربی پیغمبر این قوم ثمود صالح نبی صالح میگه رب من غریب مجیب خب ممکنه این رب برای همه غریب و مجیب باشه و برای بعضیا غریب نباشه حالا اینجا در حد چی رب غریب و مجیبه همین مقدار داشته باشید بیاییم سوره واقعه آیه هشتاد و پنج. راجب قرب چهار جور قرآن کریم آیات زیادا ولی کلن در این چهار معنا میاد در سوره واقعه آیه هشتاد و پنج. من اجازه بدید از آیه 83 بخونم که معنی آیه 85 مشخص بشه. صلولا اذا بلغت الحلقوم وقتی جان به اینجا رسید. یعنی موقع احتضار، موقع جان دادن. و انتم حينئذ تنظرون شما هم که دور محتضر نشستید دارید نگاه می‌کنید. آها الان که دیگه داره میره، جان اومد رسید به اینجا، این راضیم هم داره که این آیه شریف. این مطلب رو دنباله این آیه شریفه می چون در روایات برای ما توضیح دادن انسان تا قبل از لحظه جان دادن قفلتش زیاده مشقله زیاده توجه با عالم معناش کمه لحظه جان دادن روح یک آزادی پیدا میکنه که توجه با عالم معنا رو در میگابه اونجا براش مطلب خیلی تر میشه حالا سلولا ازا بلغتل و انتم هینه ازن تنظرون آیه 83 و 84 سوره واقعه وقتی جان این انسان داره میاد به اینجا میرسه ان غریبه که الان از دنیا بره و شماها نظاره گرید و نحن اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرون اینجا میگه من خدا داره میفرماد با اون محتضر که داره جان میده از شماهایی که کنارش نشستید نزدیکترم تا اینجا دو جور قرب گفت یک این نربی غریبون و مجید رب من نزدیک اجابتم میکن. اینجا فرمود نحنو ما اقرب الیه ما با اون مهتظر که داری جان میده اقرب الیه منکم از شماهایی که دورش نشستید من نزدیکترم یعنی چی این دو تا تالا رشته باشید تا جمعندی کنید سه سوره قاف آیه شونده سوره قاف آیه شونده ولقد خلقنا الانسان و, انسان و ما توسوس وصف نفسه ونحن و نحنو الیه من حبل الورید نه از شما به اون نزدیکتریم از رگه گردنش به خودش نزدیکتریم قرب و داره چی میکنه؟ مثلی که درجه شدیدتر از قرب اتصال گفتم که دعا از قرب میکشونه به اتصال به جایی میرسه بنده که دیگه متصل میشه قرب قرب اتصالی میشه حالا آیات رو کنید ان نربی غریبون مجیب نحن الیهه اقرب منكم خب الان فرض بفرمایید بنده داران جون میدم مختزر این جام جلو تریبون باشم سمان من دور من خب خدا داره میگه من دی مختزر شمان از نزدیکترم خب این یه درجه از قربه اما در آیه 16 سوره قاف میفرماید اقرب الیه من حبل الود ما به انسان از وقتی گردنش هم نزدیکتریم دیگه از این رق گردن به من چی نزدیکتر؟ حالا بیاد سوره انفال آیه 24 دیگه از این بیشتر چی چجوری بیان کنه در سوره انفال آیه 24 می یا آیه ها لذین آمنو استجیبو لله وللرسول رسول ازا دعا لما یحیی اجابت کنید خدا و رسول رو شما رو میخوان زنده کنن زنده اینه معنی کلام خواد بگه وَعَلَمُوا ان الله یحول بین المرعه و قلبه آخه بین قلب من و من خدا حائله یعنی دیگه از این نزدیکتر هیچی دیگه نمیشه مطرح کرد خب این درجات قرب یعنی چی حالا دقت بفرمایید، من با یک حدیث از نهج البلاغه که امیرالمومنین فرمودند به اندازه فهم ناقص خودم و مشکلی که در تبیین این بحث دارم و همین شب ایکی از عزیزان میگفت این حرفا رو خیلی مطرح نمی کردی حالا که وارد شدی یه مقدار بیاد توی این میدون گفتم چشم اگر انایت کنن این الله. حالا من با همه محدودیتی که در تبیین این دارم مجملی اجازه بدید از با این فرمایش از تحمید احضالبلاغه وارد شم حضرت وقتی میخوان خدا را به ما معرفی کنن میفرماین داخلون سل اشیا لاب ممتازه و خارجون این اشیا لاب مفارده با هر چیزی خدا هست نه این که ممزود شده باشه شده باشه خدا با من هست خدا با این هست خدا با این هست این عبارت و لو هستم اینه که قرآنی کریمه داخلون سل اشیا نه تو بلاغات خم خب مطالعه کنیم فل اشیا مگه این شی نیست، مگه من شی نیستم، مگه این شی نیست. داخلون فل آشیا با هرچی هست لابل ممتازه. نه اینکه قاطی شده باشه، مخلوط شده باشه و خارج عن از همه چیز جداست است، بیرونه لابل مفارقة. نه اینکه واقعا جدا باشه از ارتباطی با اون نداشته باشه، ربطی نداشته باشه. خب حالا اینجا دقت کنید، این بحث خداشناسی رو با این بحث دعایی که قرب میخوام دعا برای قربه مطرح کنم دقت بفرمایید اگر من در این عالم یک اثر الهی که خود قرآن میگه من امری روحه یسالونک ان الروح من امر ربی روح امر ربه. ربه روح مال عالم معناست. در وجود من خدا روح قرار داده داخل در وجود من من روح الهی که از امر ربه لا بالممازجه و لا بالمفارقه این یه مثال رو کنم روح هست نه مثل اینکه که خون دورک هست به من میگن خون دورکت هست میگم بل میکن میگم آقا یه سوزن میزنم یه تیکش میاد بیرون اینا ببینید یه تیک رگو میزنم میگم ببینید روح تو بدن من هست کو آقا؟ کو کجا؟ تو هستی آقا خودکار تو جیبمه اینا ببینید کتاب توی کیفمه اینا ببینید روح در منه کو جوریه لابل نه نبی ایمانی ممزوجی و خارجون انهو لابل مفارقه نه اینکه که دو از من جدا شده اینو باید بفهمم که حقیقت من روح منه اصالت من روح منه وجود واقعی من روح منه آثار من از روح منه حالا چند درصد من بدبخت و امثال من بدبخت در این عالم از روح غافلی از روح جدایم با اینکه اصلا من من روح منه حقیقت من روح منه چقدر از روح خودم غافلم و تمام کوششم برای جسم منه چقدر حس نمیشه صبح تا شب چیزی که مطرح شکن شهوت پول مقام دنیا ریاست منیت خودخواهی حضر گروه دار و جنا و و و روح چی شد؟ معنویت چی شد؟ کمال اینس اصلا به کلی فراموشه گاهی از شب شد فکر روحی اگر هم یه لحظه برای مسائل دنیایی ناچاری بالاخره باید به این جسمت هم برسی اونم از این دید از دید روح به جسم نگاه میکنی چون روح میگوید من در عالم ماده‌ام نیاز به ابزار مادی دارم پس باید به ماده توجه کنی توجه شما به ماده هم از دریچه روحه میشه یا نه اینجا به عنوان نزدیک شدن به بحث ارگو کنم دقت بفرمایید پس هرچه شما توجهتون به عالم روحی وجودتون بیشتر شد. به نسبت توجه به روحتون نزدیک روحی با روح قریم شدید اون اوج نزدیکی دیگه میشید یه وجود روحی تمام توجهش روحیه تمام آثارش روحیه تمام غذا خوردنش روحیه میشه بله اکل المؤمن عباده نوم المؤمن عباده خوابیدنش عباده چرا؟ چون بر مبنای روح بر ملک داره میخوابه بر مبنای احاطه روح بر بدن میخواد بدنش رو الان غذابش بده اینو ببری تو بحث خدا و عالم. حقیقت هستی خداست حقیقت جهان پروردگار آلمه ما از تو فیل انایت اوست ما ادم ما ایم و هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما ما همه شیران ولی شیر علم حملمون از باد باشدم بدم حملمون از باد و ناپیداست باد جن فدای آن که ناپیداست باد همه چی از اوه ولی اونقدر سرگرم این امور شدم سه یادم رفته خدا حقیقت اون و لذا اینجا من با خدا چیم؟ دورم گرچه داخل امسل اشیا لابل مماذجه ولی من دورم او که دور نیست من دورم چون من با او کاری ندارم مثل روح من که حقیقت وجود من روحه ولی من با روح خیلی فاصله دارم اونجایی که وقت این درجات نزدیکی گاهی میاد میگه قریب گاهی میاد میگه اقرب و منکم یا منهم گاهی میاد میگه اقرب و منحبل ورید، گاهی میاد میگه یهول و بین المرء و قلبه یعنی چون از قلب هر چیزی باید ترابش کنه این از قلب هر چیزی میخواد بیاد اصلا خدا از غیر از خدا چیزی تو دلش نیست، از خدا هر, هر چی از دلش در میاد چون دلش جای خدا شده همون چیزیست که خدا میخواد یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اونش را جانان پسندد لذا دو تیک دو سه که از کتابای روایت راجب آداب دعا خوب دقت کنید یک در کتاب اصول کافی جلد دوم باب آداب دعا که از کردم اینا رو حالا اگر عمری باشه باید بحث کنیم ولی من مجملیش رو حالا به اندازه فرصت به مناسبت اونی که احتیاج دارم ارزم کنم حدیثی داریم چندین حدیثی که شما اگه میخواید خدا رو دعا کنید قبلش یک سلسله حمد الهی رو مطرح کنید یک سلسله حمد الهی رو به زبان بیارید که خدا رو با اون اسامی بخوانید بد دعا کنید. حالا من یه نمونش رو میخونم. کافی جلد دو. صفحه 484. باب اصحنا قبل الدعا. ستایش الهی قبل از دعا. حدیث شماره دو. قال ابو عبدالله علیه السلام دفت کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن. این فی کتاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه. امام صادق میگه در نوشتهی امیرالمومنین این بود کتاب علی این رو داشت ان المده قبل المساله حتما قبل السؤال از, از خدا مده خدا داشته باشید فاذ دعوت الله عز وجل وقتی میخواید خداوند را بخونید دعا کنید خداوند رو تمجید کنید طرف فرصید کیفه او مجدوه چجوری کتاب حضرت داره توضیح میده غاله علی فرمود: تقول میگی ببین چی میگی یا <تصحیح> منو هوا اقرب و علی من حبل الورید یا فعالا لما یورید یا من یحول بین المرء و قلبه یا هو هوا بالمنظر الاعلا یا من هوا لیسک مثل ایشه چرا تو کتاب علی میگه قبل از دعا اینا رو بگو آیاتی هم که آوردم روایاتی هم که افته قبر کندم حالا جمعندی کنی کنید دقت کنید چی بود قبلش دعا برای قرب است هرچی از خدا جدا شدید مادی هستید خلقی هستید خاکی هستید شهوانی هستید عذر میخوام حیوانی هستم هر چه به طرف خدا برم روحانیام هم، معنویم هم. مربوط به عالم روح میشم یه اشاره جلسه قبل کردم آتش است و چوب و سنگ یک زمان سنگ تحمل و استعداد آتش شدن ندارد هر هرچه کنار آتش میداری یه مقدار حرارت میگیره بعد که آتش رفت اینم یواش یواش سرد میشه یخ میداره همون سنگ اولیه است یه زمان چوبه وقتی این چوب کنار آتش قرار میگیره میپذیره و میشه آتش یلقد با عالم معنا بره اشد دو اتصالم من شعاع الشمس ال الشمس امام صادق فرمود اصول کافی قلب مؤمن روح روح مؤمن فرمود ان روح المؤمن روح مؤمن به خدا اتصالش اشد و من اتصالش شعاع شعا الشمس به اندازه به اندازه درجه شعاع بودن اثر خورشید را از خودش بروز میده. مؤمن با درجه قربه به حق، با میزانی که به حق نزدیک میشه، آثار خدایی از خودش بروز میده. آثار خود نمیگم خدا میشه. چه کسی مثل امیرالمومنین و پیغمبر به خدا نزدیک شد؟ هیچکس. لذا چه کسی مثل علی و پیغمبر آثار خدایی رو جلب میده؟ آثار خدایی رو دعا اینجا حالا دقت کنید او بنده ای که میخواد نمیخواد مگه کن کن او بنده ای که میخواد میگه میخواد یه کارت میکنم آتش بشی آتش که شدی آتش بلد نخواهد هرگز به راه بالا آتش شد میره بالا آب شد آب حرکتش آب سرازیر میشه به اون جایی که باید بره میره دیگه اون جایی که باید بهش برسه میرسه ولی اگر آب نشد باید شما عامل بشید برای حرکت دادنش دیدم اینم قشنگه این شعر مولوی هم تو این زمینه قشنگه هر چه رویی دسته محتاج راست تا بیابد طالبی چیزی که جست هر که جویا شد بیابد آزبست مالیه اش وردست و اصل مرحمت هر کجا دردی دوا اونجا رود هر کجا پستیز آب اونجا رود آب کم جوی تشنگی آور به تا بدوشد آب از بالا و پست تا نزاید تفلک ناز و گلو کی وانگردد ز پستان شیر رو برای اینکه به قرب حق برسیم باید دل دردمند بشه دل دردمند دعا براش مطرح میشه دعا به سوی خدا توجه کردنه توجه به سوی خدا انایت خدا را به سوی خود آوردنه انایت خدا به سوی خود آمدن شما را بالا بردنه هر چی بالاتر رفتید قربتون بیشتره هر چه قربتون بیشتر شد اون وقت داخل فل اشیا لابل بالممازجه همش داخل فل اشیاش براتون جلوه میکنه نه خارج عن اشیا لابل بالمفارده تو همه مراحل میشه اسمی از ذات اعلی اصفرا علی اصخر علیه و السلام بردن اتفاقا داره که یکی از اون جاهایی که نمیخوام روزه بخونم میخوام این استفاده بحث این ارتباط بحثیم بکنم یکی از اون جاهایی که ظاهرا خود عبی عبدالله خیلی بهش سخت گذشته شهادت زلی از حالا شاهد میارم امامان بعدم خیلی بهشون سخت گذشته یکی مظلومیت از تر همهشون مظلوم بودن همهشون بهشون اجهاف و ظلم و بیانصافی در حقشون شد اما اونجایی که مثلی که مثلا داریم وقتی طرف رفت مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام ابن رسول الله مختار خروج کرده داره یکی یکی قاتله کربلا رو میگیره بلا فاصله امام سجاد پرسیدند حرمله رو گرفتن خب آخه این چرا بلا فاصله حرمله چرا مثلا حتی شم را اول مطرح نکردن حالا یه بزرگی میگفت من نمیدونم میخوام اینو بگم تا بعد به این قضیه که در اثبات با بحث ما بگم یه بزرگی میگفت مظلومیت از تعالی اسغر در کربلا از همه شهدا به نظر میرسه بیشتر باشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هر سروازی لاعقل یه شمشیری در دفاعی از خودش دست آخی بس بگونه. لذا وقتی تیر به گلوی علی اصقر خود داره که امام منظورم اینجاست. با اینکه اینقدر انقدر سخته اما این نکته جالبه. امام حسین دستار آور زیر گلوی علی اصقر مشکی از خون گلوی این کودک بیبناه مظلوم تو دستش پاشید با آسمان میگن یه قطر پای نیومد اما منظورم این عبارته عرض کرد به خدا حفن لی اینهو و این الله اینا برای من راحته چون پیش توه تو داری میبینی داخلون فلاشیا لاب المماذجه همه جدر خدا رو میبینه لذا اگر اینا اومدن گفتن الهی سینه آتش افروز روز آن سینه دلی وان دل همه سوز آن دل را که سوزی نیست دل, نیست دل نیست دل بی سوز غیر از آب و گل نیست سوختم به اینجا رسیدن چی میگم من بچه چی میدونم که چه کردن تا به این معانی برسن که دلی خواهم که زود در بسوزد عشق ورزد عشق ریزد صفای خاطر دل درگ است دل بیسوز همچون گور سرد است سوختن تا آتش شدن آتش شدن ره بالا گرفتن ره بالا گرفتن بالایی شدن و پریاد برآوردن مازه بالای و بالا میرویم. میخوای بیای بالا بیا چه خبره تو به تو عالم خاک مونده؟ این میشه قرب وقت برای این قرب یکی از اونها همین دست به سوی او دراز کردن و دعا کردنه. الهی الهی الهی گفتن الله الله مطرح کردنه اینم باز چون به بحث اثر من اشاره میکنم ولی وارد بحثش نمیتونم بشم اگر خدا توفیق داد وارد بحثش بعدها بشم انشاء الله شما دقت کنید در دعاها تو همین دعای کمیلم هم ماله مال امشب مخصوصا در مناجات خمسه عشر دقت کنید قوقاس تو دعای مکارمال اونایی که میدونم گفت اقایی که توی این وادیه هم تو دعای مکارمال اخلاق دقت کنی و حاکر حالا نمونه هاشو بعضی ها میگم مخصوصا دعاهایی که یک مقدار جمبه های هنگین تر بار معرفتی داره سه دعای سبا اوغاست دعای صبح اولی که از عزیزان میگفت خوندنش سخته تا چه برسه به شراب و بستش ای دعاها رو کنید. بعضی جاها داره یا الله یا رب خب یا حرف نداست ندا قبل از داس دعا قبل از مناجاته تو همون دعا بعضی جاها داره رب رب بعضی جاها داره ربه الهی بعضی جاها داره یا الهی چرا از معصوم آقا مگه به حساب واب حساب داره چرا بعض جاها میگه یا الهی بعض جا میگه الهی بعض جاها میگه یا رب ده بعض جاها میگه ربه اونجایی اون جایی که میگیره مزامینش رو دقت نمیرسم اگه شد میارم میخونم ان الله مزامینش رو دقت کنید اون که داره از گناهانش میگه از کوتاهی خودش میگه یعنی من با تو دورم اونجا یا میاره یا الهی یا ربی من کجا ولی اونجایی که خواسته غربی شو من یعنی به اونجا برسم اونجا میگه ربه مثل اینکه مثلا فرض کنید حالا من ما مجبورم تو این عالم اینجور از اون داخل الفلاشیا شاهد گرفتم تا بیام تو این وادی بتونم حرفو بزنم شما یک زمان مثلا در حالت عادی داری دعا میکنید یا الله و یا رحمان و یا کریم و یا رحیم اما یه دفعه حال پیدا میکنید کم کم حال معنوی بر شما غلبه میکن. اون سوز و گداز عرفانی بهتون دست میده میرید تو اون وادی که حس میکنید الان پیش خدایی اینجا یه دست خدا خدا خدا دیگه یام نمیرید تو فارسی میگید ای خدا حالا تو عادی نشون میده مثل اینکه با او اما اونجایی که حس میکنید الان یه دست نوازشی داره به سرت میکشه تشویق میکنم اما که اینا گیریم در زبان اونجایی که حس میکنید دست دراز شده بندم چی بیا اونجایی که احساس میکنه یه دریچه نوری به سود گشوده شد اونجا دیگه حتی یا به زبان نمیاد خدا مثل اینکه دیگه غرق شدی این حالت رو ببینی تو دعا ارمیش چجوری به معنی شون میدن میگن وقتی دعا میخواد به قرب برسه که جایی که بناس به قرب برسه دیگه یام از وسط برداشته میشه میشه دعا اون هم که قرب بالاتر شد یحول بین مرعه و قلبه میشه دیگه اونجا سخن سخنیست که دیگه بیانش مقداری مشکله جلد اول اصول کافی کتاب الهجه است صفحه سی و امام امیر علیه السلام با تلحب و زبیر مناشده داره میکنه به امامت خودش ساجب دعا نیست ولی به مناسبت یعنی حرفایی که بنده میخوام بزنم حدیث ببینیم این صفحه و این صفحه و این صفحه تا اینجا تقریبا سه صفحه حدیث از اون حدیث جاندار وحث امامت که امیرالمؤمنین داره تلحف و زبیر رو خونده با اینا داره بحث میکنه یعنی با اینا داره صحبت میکنه آخه شما که میدونید من چیم من چیم شما چرا؟ به این مناسبت دقت کنید صفحه امیر امیرالمؤمنین به اینا فرمود فهمیده شده که الله شما رو قسم میدم به خدا حالا میخواد قسم به خدا بده کدوم خدا الضی هو اقرب الی کمن نفسک بین که و بین قلبک الضی یعلم قائنه الاعیون و ما تخت و ستوور. از قدمو الی کزبیر، لی با زبیر هفده نام. میخواد جلوی چکار داری میکنی؟ تو رو قسم میدم با. خودم خدا. خدایی کی عرفا، ببینید بعث اقرب کربو من نفسک خدایی که الحائل بین و بین قلب. خدا با تو این جوریه. اما تو کاری کردی که خودت از او جدا کردی حالا که خودت از او جدا کردی زحمت خودت میکنی تو همین توعقل وقول بخش کلمات امام علیه السلام دقت کنید تو بخش کلمات خسارم معمر بن یکی از یاران امام است اومد خدمت امام خوب دقت کنید عرض کرد که آقا انشالله خدا کنه خرج شما بشه شاید مثلا ولادت اهدی رو دیده بود و زواهر عمرو دیده بود خیال کرد که خب دیگه یواش یواش امام رضا علیه السلام نونش تو روغم میفته با... می و امام رضا در فرج حاصل میشه اوزار امام فرمود فرج ما فرج بشه برای شماست ما که اگر در اوج فرجم باشیم یه ماش گندم باید توی کیسه لاک و مهر کرده داشته باشیم بخوریم ما میخویم شما راحت بشید ما که عالم, عالم دیگریه اگر این همه داد زدند برادر و خواهر خواستان دست من تو رو بگیرن تو دست خدا بسپارن بگن بیا بالا ببینید کجا میخواهید برسید بزنتی تو کتاب عیون و و الاخبار رو رضا داره خب دیروز دیگه ایده امام رضا بود دیگه از اینم بگی بزنتی خیلی ارادت به امام رضا داره اومد خدمت امام رضا این نکته ها اومد خدمت امام امام شام براش شاوردن. شامو خورد خدمت حضرت تو خراسان بعد افکت که بعد از شام برم منزل آقا فرمود نه ای بجانتی امجا بخواب چشم شما هم میکنی چش حضرت رفتن اتاق دیگه تخت و خودشون بغل کردن بیارن این بار توی این اتاق برای بجانتی فراهم کنن خود بجانتی نارو میکنه میگه تو دلم گذاشت به الحمدلله ما چه موقایی دسته امام رزا داره برای ما رختخواب میاره گفت تو راه که حضرت از اون اتاق بیاد توی این اتاق رختخواب بیاره فرمود بجانتی دور بر ندا اگر ما به شما علاقه نشون میدیم میخوایم شما اینجوری نباشین خود تو از اون درجه ننداز پایی خود بزنطی میگه اونا اومدن ما رو اوج بدن و ما رو بالا ببرن یه کاهل بابر تقصیر صاحب خانه چیست خب از بهرین یه تعدادی از شیعه شیعه های بحرین الان هم هست گذشتم بوده یه های دل سخته عجیبی داره جوان ها من دیدم بعضی جوان های شیع های بحرین ای شرایط اجازه میداد نمیشه ما ها مشکلاتی داریم گاهی اون جوان ها رو دعوت کنیم بیا اینجا شما ببینید گاهی شماها ها رو ورداریم بریم اونجا اون جوان رو ببینید آقا یک پارچه چه نورن بردیاشون به خدا من قفته میخورم من یه گروه از جوان های شیعه کویت بحرین امارات قطر این کشورهای خلیج و عربی رو میشناسم. و همچنین در عربستان تو قطیف و احسا اینا با هم دیگه دارن حتماً قبل از اذان ظهر جمعه نماز جعفر تیار بخونن حتماً سحر جمعه داینوتبر رو با این آداب بخونن هر چی یک کارهای جوونا میکنن عشقی دارن شوری دارن میسوزن و میقودازن واقعاً دیدنین واقعاً دیدنین حالا رضا گاهی وقت‌ها با خودم اینجوری فکر میکنم خدا میدونه به خودم میگم حالا شما میشنوی من امروز نزدیک 300 کیلومتر راه رو رانندگی کردم تو برف و سرما و خصصا فکر نمی‌کردم انشب بتونم حرف بزنم خدا شاهد رسیدم منزل تصمیم گرفتم زنگ بزنم دیگه‌ران این شب صحبت کنم من حالم هم اجازه نمی از بس خستم ولی احساس کردم که نزدیک به ولادت ممرضا بوده و در آینده نزدیکم انشالله بناس گروهی از این حسینیه کربلا برن اینجا تعطیل میشه یکی دو ای شاید گفتیم دیگه تعطیلات پشت هم نخوره رضا از این جهت گفتم امشب با همین ناتوانی میام حالا اینم امشب دارم میگم به خودم میگم بلند شما بشنوید با این حالم دیگه نمیخوام وقت توی عرفا بگیرم خدا شاهده من گایی به خودم میگم بد وقت تو همین دنیا اول اگر یه جمعه مثل فردا من چی میتونم انشالله آرزو داریم جمعه برد جمعه برد این جمعه ندا برخواست مهدی به بر. اومد یه دفعه میبینی از بحرین، از کویت، از عربستان، از تو اروپا شیعه پامیشه میاد. امام تو آغوشش میگیره میگه سروازم بیا، محرم بیا، عضو اصلیم بیا. ولی من بدبختی که تو ایران از بچگی تو جلسات امام حسین بزرگ شدم و تو مسجد حسینیه بودم و امام رضا علیه السلام تو کشورم بی گذرنامه میرفتم خدمتش به این را حضرت بگه تو با ما خیلی کاری نداری برو یه دل شیای شیعای یه تعدادی را افتادن قبل از برق و و این قضایا این توی کرامات و رزویه ی آستان و قدس رزوی ثبت شده تاریخش، زمانش و نام اون افراد پس جزه آستان و قدس رضوی نگهداری میشه در کتاب کرامات و رزویه هم شده اونجا ببینید یه تعدادی از شیع حرکت کردن به نزدیکی خراسان رسیدن برف و بوران عجیبی شد همدیگر رو گم کردن راه هم تاریخ شب شد یخ هم زد اینا مال بهره منطقه یرم سیر دیگه احساس کردن که توی یخ و سرما باید بمیرن دو سه نفرشون میگن که ما این اسب و شطوری که همراه داشتیم مرکبی که داشتیم این رو اندازه‌ای بود گلیمچی بود هرچی بود اینا رو برداشتیم گفتیم دیگه حرکت نمیتونیم بکنیم چون که این برف و باران هرچی این مرکب میره ما نمیدونیم کجا میره ما جایی رو بعد نیستیم یه گوشه بشینیم اینا رو بکشین سرمون فعلا که چند نفر مثل لاو کرسی مانن این گرما ما رو یه مقداری محافظت کنه ببینیم چه میشه گفت یک پیرمرد سیرنگ بیهوش این دو دیگه که موندن با خب ترسون سرشون گفت یکی از اینا گفت دلم به نمیدونم کدوم طرف ما رضا است همین به یه طرفی رو گذشته. رو دوختم گفتم که یا علی ابن موسی ما شیعه‌ی تو‌ایم ما از بهره این راه افتادیم اومدیم بیایم تو رو زیارت کنیم اگه شما میپسندید تو این برف‌ها دفن بشیم بمیریم اب نداره ولی شما تف غیر شیعهای اون منطقه های ما رو میکشه میگه دیدی اگه این همه دم از امام رضا برف بوران تو را باهشون چیکار کار کرد؟ میگه همین حالا یکی از خدام حرم امام رضا میگه ما روی مناره ها و گلسته ها شبا مشعل روشن می کردیم که از دور شعله ها پیدا باشه اون شب اونقدر برف و باران بود ما نرفتیم روی مناره مشعل روشن کنیم سردم بود خیلی من هم تو قسمت اتاق خدام خوابم برده بود. یه وقتی دیدم اما هم رضا علیه السلام آوردن منو به اصطدا دادن فلانی پاشو مشعل روشن کن مهمونام تو را مونده فوری از خواب پریدم چی شد تو این برفویخ به زحمتی لفتم بالا مشعل روشن کردم اونام میگن ما یه دفعه دیدیم حالا دستی حرکتشون داده آورده یه دفعه دیدیم روبروی ما یه مشعلی روشن شد گفتیم مثل این که غاره پیدا کردیم حرکت کنیم از این طرف هم میگه تو خواب به من مشعل رو روشن کن چند نفری فانوس بردارید بری به استقبال های مهمون های من تو این مسیر برید دیدن یه عده فانوس به دست اومدن گفتن ما رو امام رضا را سنده که بیایم شما رو یا یقنه یعنی رسول الله یا علیت و سر رضا یا حجت الله <سؤال> علی اخره یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و جهنم استش فانا و به الله و قدمنا که بین یده یاتنا یا وجیه مند الله اشهدنا الله اما این امام رضا علیه السلام مثل اجدادش و فرزندانش هم مثل او همه مساله کربلا رو توجّه داشتن تا تو این حال شما اشاره ای نکنم عواصط میگه فرمود عواصط اگه دیدی عوا رو به سرم کشیدم درم میام فرش و حجر رو جمع کن آقا چرا فرش حجر رو جمع کنم اگه عوا به سر کشیدم بدون منو مسموم کردن اگه منو مسموم کردن میخوام مثل جدم حسین رو زمین خالی جان بسپارم